داستان کوتوله های تپه مانچول در زمانهای قدیم بازرگانی بود به اسم جاکوب که خیلی مهربون بود بازرگان همیشه جنس رو به قیمتی که میخرید خرید میفروخت حتی گاهی اونها رو تر هم میداد در نتیجه اون روز به روز فقیر و فقیرتر میشد در حالی که همسایه هر روز ثروتشون بیشتر میشد زن بازرگان از این کار اون خیلی ناراحت بود. اون شب و روز بازرگان رو سرزنش می کرد می دست از این کارا بردار به فکر این باش که چطور سودتو زیاد کنی نه اینکه که هر روز زرر کنی. زن بازرگان خواهر پولداری داشت که ازدواج نکرده بود. اون یه خونه بزرگ با خدمتکارای زیاد و یه کالسکی زیبا داشت. یه روز زن بازرگان از خواهرش پرسید تو این همه پول رو از کجا آوردی؟ خواهرش در حالی که لیوان شربتی به اون طرف میکرد گفت «برتا این یه رازه؟ برتا در حالی که با حسادت به اساسی گرامبه ها نگاه میکرد گفت آخه پدر و مادر ما چیزی نداشتن بر ما بذارد ما خیلی فقیر بودیم جاکوب مثل یه ابله رفتار میکنه من مطمئنم اون هیچ وقت پولدار نمیشه خواهرش کمی صبر کرد و بعد گفت برتا من خواهر بزرگتر تو هستم شاید دیگه وقت اون رسیده که رازم رو به تو بگم اما این کار یه شرط داره برتا با خوشحالی فریاد زد هر شرطی باشه قبول میکنم خواهرش گفت شرط من اینه تو نباید از این موضوع با کسی حرفی بزنی حتی با شوهرت مرتا گفت قول میدم قول میدم حالا راز تو به هم بگو خواهرش در حالی که دستشو روی اساسیه و اشیای گرانبهای منزلش میکشید جواب داد خیلی خلاصه بگم من همه ثروتم رو مدیون کوتوله های تپه مانچول هستم برتا با صورت رنگ پرده گفت به به پس تو با کتوله های ارتباط داری؟ خواهرش در جواب گفت بله اما این یه راز خانوادگیه که فقط تو از اون خبر داری و بعد ادامه داد من به تو میگم که چه اتفاقی افتاده شکیم ندارم که اونا با تو هم همون رفتاری رو میکنن که با من کردن برتا گفت من هر کاری لازم باشه میکنم هر کاری برای اینکه ما پول کمی داریم من شک دارم که حتی بتونیم اجاره ماه آینده مغازه رو هم بپردازیم طاهرش گفت برتا تو باید تا قرص کامل ماه صبر کنی بعد به تپه های مانچول بریم برتا گفت اون تپه زیاد از اینجا دور نیست من اونجا رو بلدم اونجا یه محل مطروک است خوب بعد باید چی کار کنم خواهرش گفت یه ظرف شیر تازه چند تا نون نمکدار با خودت بردار مرتا با خوشحالی گفت اینکه کاری نداره نونو خودم میپزم شیر تازه رو هم تهیه میکنم خواهرش گفت اما نون و شیر کافی نیست بعد کمی صبر کرده ادامه داد تو باید با ارزشترین چیزی رو که در خونه داری با خودت ببری. برتا با بی‌صبری پرسید بعد از اون چیکار کنم؟ خواهرش در جواب سرش تکون داد و گفت من هر چیزی که لازم بود به تو گفتم. بقیه کارا رو خودت باید انجام بدی. برتا هر کاری کرد نتونست خواهرشو رو وادار کنه تا توضیحات بیشتری به اون بده. اون وقت شربتش رو سرکشید و از اون خدافزی کرد. در راه با خودش چیزهایی را تکرار کرد که خواهرش گفته بود. نون با نمک، نون با نمک، شیر تازه گاف، شیر تازه گاف، تپه منچول، تپه منچول، قرص کامل ما، قرص کامل ما. برتا تا شب به این چیزا فکر میکرد. تازه بعد از اون بود که نگرانیش در مورد سومین چیزی که باید برای کوتوله ها میبرد شروع شد. خواهرش به اون گفته بود تو باید با ارزشترین چیزی که در خونت داری با خودت ببرید. اما اون که توی خونه چیز با ارزشی نداشت. برتا به فکر فرو رفت و با خودش گفت چی توی این خونه میتونه با ارزش باشه؟ بعد با چشماشو بست. اما قبل از اینکه به خواب بره سعی کرد اون رو از شوهرش یاکوب بپرسه اما یاکوب به خواب عمیق فرو رفته بود صبح روز بعد وقتی یاکوب از خواب بیدار شد برتا گفت یاکوب فکر کن ما نتونیم پولی به دست بیاریم تا کرایه مغازه رو بدیم در اون صورت ما چی کار باید بکنیم چه چی چیز با ارزشی تو خونه داریم که بفروشیم؟ ژاکوب با تعجب به زنش نگاه کرد. اون تا حالا به لحن آمیز همسرش عادت کرده بود اما این بار لحن همسرش عوض شده بود. به آرومی از اون سوال کرد و این باعث حیرت اون شده بود. ژاکوب گفت: بله، بله، اما این موضوعیه که باید دربارش کمی فکر کرد. برتا دوباره پرسید: یعنی تو میدونی چه چیزی تو خونه ما از همه با ارزش تره؟ جاکوب کمی فکر کرد و گفت چرا میدونم برای من تو از همه چیز با ارزش تو گرانبهاترین چیزی هستی که من توی این خونه دارم؟ اما برتا اصلا از این حرف خوشش نهی ژاکوب ادامه داد اما اگه منظور چیزی که برای هر دوی ما با ارزشه به نظر من، اون فقط پنجه ابریشمیه. پنج ساله که اون با ما زندگی میکنه و دوست و همدم ما. من خودم بارها و بارها از تو شنیدم که گفتی پنجه ابریشمی خیلی برام با ارزشه پنجه ابریشمی یه گربه سیاه و سفید بود که برتا از اون مواظبت میکرد. برتا پنجه ابریشمی رو خیلی دوست داشت. به اون خیلی محبت میکرد. بخصوص از وقتی که فهمید دیگه بچه دار نمیشه علاقش به اون بیشتر شده بود ژاکوب دوباره گفت بله پنج ابریشمی با ارزشترین چیزی است که ما داریم ما این حرف برتا با عجله از جاش بلند شد و به طرف پنج ابریشمی رفت پنج ابریشمی روی یه نازبالش دراز کشیده بود و چرت میزد برتا اونو بغل کرد و بوسید پنج عبری شمی با رضایت خورخور میکرد. برتا به گریه افتاد. جاکوب با تعجب اونو نگاه میکرد. برتا با اون که خیلی دلش میخواست مثل خواهرش پولدار بشه اما دلش نمیخواست گربشو برای همیشه از دست بده. یه دفعه فکری به خاطرش رسید. با خودش گفت شاید بتونم تو انبار چیز بهتری پیدا کنم. اون وقت با عجله به انبار دوید و مشغوله گشتن شد. اما هیچ چیز پیدا نکرد. روزها میگذشت، قرص ماه کم کم کامل میشد. شب چهاردهم از راه می رسید. برتا روز به روز لاغر و رنگ پریده تر می اون دیگه میلی به غذا خوردن نداشت. فقط گوشه این می شست و به فکر فرو می رفت. این مسئله بازرگان رو خیلی نگران کرده بود. اون بارها از برتا، درباره سلامتیش سوال کرده بود اما ورتا به او اطمینان داده بود که کاملا سالمه تا اینکه روز چهاردهم رسید ورسا به شورش گفت من میخوام امشب به خونه خواهرم برم پنج ابریشمی هم با خودم میبرم بازرگان با خودش فکر کرد این کار برای اون خوبه شاید اگه چند روز اونجا بمونه حالش خوب بشه به همین خاطر با رفتنش موافقت کرد وقتی بازرگان از خونه بیرون رفت برتا دست کار شد اول نون پخت و بعد به دهکدهای که در اون نزدیکی بود رفت تا شیر تازه گاو تهیه کنه. وقتی به خونه برگشت نون کاملا سرد شده بود برتا کمی نمک روی اون پاشید و اون رو با شیر داخل سبد گذاشت و قبل از اینکه قرص ماه بیرون بیاد به طرف تپه مانچول را افتاد. سبد خیلی سنگین بود، راه طولانی و خسته کننده، اما اون حتی لحظه هم برای استراحت نایستاد وقتی به تپه مانچول رسید، جعبه رو که گربه داخلش بود در بین بوته‌ها گذاشت و روی سبت و هم پوشوند. بعد پوش درختی نشست و به پایین تپه خیره شد. کم کم خرس ماه بیرون اومد. ماه مثل یه سکه نقره گرد و درخشان بود. در همین موقع چشم برتا به در سبز کوچیکی افتاد که تا به حال اونو ن بود. برتا خودش رو پشت درخت پنهان کرد. ناگهان در سبز باز شد و دو مرد کوچیک بیرون اومدند. اینا کتوله های تپه مانچول بودند. کتوله ها یه میز گرد کوچیک آوردن و جلوی در گذاشتند بعد داخل خونه رفتن و دوباره با ظرفی پر از غذا برگشتند اونها همه وسایلشون رو با تشریفات خاصی روی میز چیدند وقتی اونها برای چندمین بار به داخل خونه رفتند، برتا با عجله به طرف میز دوید و نون نمکدار و ظرف شیر رو روی میز گذاشت و سر جای خودش برگشت. در همین موقع ها در حالی که جعبه بزرگ و سیاهی با خودشون حمله میکردند از خونه بیرون اومدن. به نظر برتا جعبه پر از طلا بود. اونا جعبه رو هم کنار میز گذاشتند. برتا با خودش گفت فکر نمی کنم تا به حال موجودات زشتی مثل این دوتا دیده باشم. کتوله ها پشت میز نشستن و مشغول خوردن شدن. یک دفعه چشمشون به نون نمکی و ظرف شیر افتاد و خیلی خوشحال شدن. برتا تا تمام شدن نون و خالی شدن ظرف شیر خودشون نشون نداد. بعد به طرف اونها رفت و گفت من خوشحالم که شما از خوردن نون و شیر لذت بردید میدونید نان را همین امروز پختم و شیر را هم همین امروز دوشیدم کوتولوها از دیدن اون اصلا تعجب نکردند برتا احساس کرد اونها قبلا از وجود اون باخبر بودند کوتولوای که کمی بزرگتر و زشتر بود گفت ما نان و شیر رو خوردیم حالا تو باید با ارزشترین چیزی رو که داری به ما بدی برتا گفت اگه این کارو کنم شما در عوض چی به من میدید؟ دو کتوله با آواز گفتن ما چه چیز به اون میدیم؟ ما چه چیز به اون میدیم؟ بعد از پشت میز پایین پریدن و جست و خیز کنان دور جعبه سیاه چرخیدند. ناگهان یکی از کتوله ها روی جعبه پرید و فریاد زد تلا تلا تلا چیزیه که ما به اون میدیم. اون یکی فریاد زد تلا، تلای کتوله ها، تلای تپیه منچول. برسا به آرامی گفت خیلی خوبه. حالا منم یه چیز با ارزش به شما نشون میدم. به پنجه ابریشمی فکر کرد و گریش گرفت. کتوله ها فریاد زدم سوت باش، سود به ما نشون بده. بعد تلای تپیه مانچول مال تو. برسا قمگین به طرف بوتها رفت و جعبه رو برداشت و دوباره پیش کتوله ها برگشت. کتوله ها دوباره گفتن نشون بده، نشون بده. مرسا گفت اول شما طلا رو به من بدید تا من در جبر باز کنم. کتوله ها به هم نگاه کردن. اونا تصمیم داشتن اونو فرید بدن. به همین دلیل سرشونو تکون دادن و به طرز مشکوکی به هم نگاه کردند. بعد هر دو گوش های بزرگشون رو تکون دادند اما چون خیلی کنجکاو بودن و میخواستن بدونن داخل جعبه چیه سرانجام در جعبه سیاه رو باز کردن و دو کیسه طلا از اون بیرون آوردند. بعد به برتا گفتند حالا نوبت توه. برتا کیسه های تلا رو گرفت و داخل سبدش گذاشت. بعد به آرومی در جعبه پنج عبرشمی رو باز کرد. پنج ابریشمی شمی در داخل جعبه به خواب رفته بود یه دفعه فکری به خاطر برتا رسید با عجله پتوی صورتی نرمی که زیر گربه انداخته بود بیرون آورد کوطول تا پتو رو دیدند با خوشحالی فریاد کشیدن و اون رو چنگ زدن اما برتا پتو رو محکم گرفت و گفت سب کنید کوطول فریاد زدن اونو بده اونو بده حالا دیگه مال ماه برتا گفت، بذارید اونو براتون بپیچم مرتب کنم. کوتولا گفتن، نمیخوایم، نمیخوایم، سود باش، سود باش به ما بده. برتا پتو رو به اونها داد و کتولا از خوشحالی بالا و پایین پریدند. اونا با پتو میرخزیدن و اونو رو سرشون مینداختند بعد اون رو دور خودشون میپیچیدن. برتا کمی به اونها نگاه کرد. بعد در جعبه گربه رو گذاشت و سبد و برداشت و با عجله از اونجا دور شد. گوتون ها با رضایت روی پتوی نرم و صورتی نشسته بودن. وقتی برتا به خونه رسید، پنجه ابریشمی رو از داخل جعبه بیرون آورد و بینی اونو بوسید. گربه با رضایت خور و خوری کرد. برتا کیسه های طلا رو برداشت و اونها رو در گوشه ای پنهان کرد. بعد از اون روز، برتا و شوهرش تونستند با کمک کتوله های تپه مانچول زندگی خوب و راحتی برای خودشون فراهم کنن و بازرگان مهربون از اون روز به بعد بیشتر به مردم کمک می‌کرد. برتا هم به خاطر قولی که به خواهرش داده بود، از راز اون شب مهدابی با هیچ کس حرفی نزد. اما کسی چه میدونه؟ شاید هم واقعاً اینطور نباشه. چون بعضی وقتها که تا نمیاره پنج ابریشمی شمی رو روی زانوش میشونه و تمام داستان عجیب خودش رو برای اون تعریف میکنه. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. بدرود کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی